ریچل شنبه سه آگوست 2013 صبح دیشب خواب دیدم تو جنگل و تنهایی دارم قدم میذارم هوا هنوز گرگ بود دم طلوع درست مطمئن نیستم اما انگار چند نفر دیگه اونجا بودن نمیتونستم ببینمشون فقط میدونستم هستن به بهم نزدیک می شدن نمیخواستم دیده بشم میخواستم فرار کنم اما نمیتونستم پاام خیلی سنگین بودن وقتی سعی کردم فریاد بزنم هیچ صدایی ازم بیرون بیرون نمیومد وقتی بیدار شدم نور سفید از لابلای کرکره سر میخورد تو بارون بلاخره بند اومده کار خودشو کرد اتاق گرمه بوی وحشتناکی میده تند و ترش از پنجشنبه ترک کردم اون بیرون میتونم صدای خرخر جارو برقی رو بشنوم کتی مشغول تمیزکاریه بعدش میره بیرون وقتی بره میتونم یه کار مخاطرآمیز بکنم هنوز مطمئن نیستم چه کاری. درستی ازش ندارم. شاید یه روز بیشتر به خودم برای نوشیدن وقت بدم. بعدش یه راست از فردا شروع کنم. صدای بوق خفیفی از تلفنم بلند میشه. داریم گه که باتریش خالی شده. برش میدارم و میزنمش به شارجر. تازه متوجه میشم که دیشب دوتا تماس از دست رفته داشتم. پیام صوتی رو چک میکنم. یه پیام عادی هم دارم. ریچل سلام مامانم ببین من فردا دارم میام لندن شنبه. باید یکم خرید کنم میتونیم برای قهوه یا چیزی هم رو ببینیم عزیزم الان وقت خوبی نیست که تو بیایی و بمونی اینجا خب من یه دوست جدید گرفتم و میدونی که اوایلش چطوریه <تصفح> تر تر میخنده به خیلی خوشحال میشم اگه بتونم یکم بهت قرض بدم تا دو هفته فردا دربارش حرف میزنیم باشه عزی میخوام باش رو راست باشم و دقیقا بهش بگم که اوضاع چقدر خرابه. این یک گپ و گفت معمولی نیست که بخوام موقر و سنگین و سرد باشم. خودم از تخت بیرون میکشم. حالا میتونم برم فروشگاه قبل از اینکه برم تو ترک خودمو رو به دو لیوان مهمون کنم. میام رو لبه تخت. دوباره به گوشیم نگاه میکنم. تماسایی از دست رو چک میکنم. فقط یکی از, مامانه و یکی از یه به یک شب. با تلفن تو دستم میشینم با خودم درگیرم که بهش زنگ بزنم یا نه نه حالا خیلی زوده شاید بعدن بعد از یه دیوان. نه بعد از دوتا گوشی رو از شارج میکشم کرکرر میکشم بالا و پنجره رو باز میکنم بعدش میرم همومو یه دو شابه سرد میگیرم پوستم و مالش میدم و موهامو میشورم و سعی میکنم صدای رو که مدام تو سرم میگه عجیب کمتر از 48 ساعت بعد از اینکه جسد زنت کشف شده نصف شب یه زنه دیگه زنگ بزنی رو ساکتش کنم. عصر زمین هنوز خشک نشده اما خورشید داره از لابلای ابرای سفید قطور راه باز میکنه. من برای خودم یکی از های کوچیک شراب خریدم. فقط یک. نباید بخورم اما موقع نهار با مادرم باید نیروی اراده منع مشروبات الکلی برای همیشه رو آزمایش کنم. به هر حال اون قول داده 300 پوند به حسابم بفرسته. برای همین وقت و هدر ندادم و قبل از رسیدن پولش خریدمش. من اقرار نکردم که آزا خیلی خرابه. بهش نگفتم که ما خاص از کار اخراج شدم یا اینکه آتیش سوزوندم اون فکر میکنه پولش تا زمانی که پول اضافه به ام برسه تو دستم در جریانه. بهش نگفتم که چقدر آزام با الکول خراب و تا کجاها افراد کردم و اون متوجه نشد کتی متوجه شده وقتی امروز صبح تو راه دیدمش به هم یه نگاهی انداخت و گفت محض رضای خدا الان نمیدونم چطور متوجه میشم، اما همیشه میفهمه حتی اگه من فقط یه نصف لیوان خورده باشم اون وقتی نگاهی بهم هم می که نشون بده میدونه اون میگه از چشات میتونم بخونم اما وقتی خودم رو توی آینه نگاه میکنم چشان مثل همیشه هست سبری سر اومده هم, دردش هم همینطور. من باید دست فردارم ولی نه امروز امروز نمیتونم امروز خیلی سخته باید برای این موضوع آماده شم باید منتظرش بشم اما نمیدونم چه جوری. سوار قطار میشم و اون همه جا هست صورتش تو هر روزنامه میدرخشه مگانه خوشحال موتلای و زیبا مستقیم به دوربین نگاه میکنه به من یه نفر یه نسخه از روزنامه ای تایم رو پشت سر من جا گذاشته. برش می‌دارم و گزارششونو رو می‌خونم. تعین هویت ظاهری دیشب انجام شده. کار با چه کافیه جسد امروزه. از این سخنگوی پلیس نقل شده که تشخیص علت مرگ خانم هیپفیل ممکن است دشوار باشد چون جسدش مدت زیادی بیرون مانده و حداقل چندین روز توی آب بوده است. فکر کردم بهش وحشتناک. عکسش درست جلو رومه. چیزی که بعدن شده، چیزی که حالا بهش تبدیل شده. اشاره مختصری هم به کمال شده، دستگیریش و آزادیش و یه جمله از کارگاه گسگیل که گفته در حال پیگیری یه سری مدارکن. احتمالاً منظورش اینه هیچ سرنخی ندارن. روزنامه رو می و میذارمش رو پا. از این بیشتر تحمل نگاه کردن بهش رو ندارم. نمیخوام این چیزای ناامید کننده رو بخونم، این کلمات خالی رو. ما از پنجره بیرون میبرم. به زودی از جلوی خونه پلاک 23 رد میشیم. نگاهی به بالا میندازم فقط برای یه لحظه. اما از این طرف خیلی دوریم و نمیشه واضح چیزی رو دید. به خشمی که داشتم و اینکه چقدر دلم میخواست برم با اون زن روبرو بشم فکر می کنم. اگه این کارو میکردم چی میشد؟ چی میشد اگه میرفتم اونجا، محکم در میزدم و ازش میپرسیدم چه فکر کوفتی داری که این کارو کردی؟ یعنی اون بازم روش میشد می بره بیرون و روی تراس بشینه. چش اون میبندم توی نرسکووت یکی سوار میشه میشینه کنارم. چشام که باز میکنم و چیزی که توی اون شلوغی توجه هم و میکنه عجیبه. قطار نیمه پاره ولی همینجور کله آدمی که جرم قطار شده. میتونم بوی عطر بعد از اصلاحو که با بوی سیگار قاطی شده حس کنم و میدونم قبلا این بو رو استشمام کردم. سلام سرما بلند میکنم و نگاه میکنم اون یارو موسرخ هست همونی که شنبه شب تو ایسکا بود به هم لبخند میزنه و دست راست میکنه تا با هم دست بده انگار حولم که دست میدم دستش قوی و خشکه منو یادتون میاد میگم بله و همینطور که حرف میزنم سرما تکون میدم بله چند هفته قبل تو ایسکا سررت و لبخند می زنه میگه یکم زیاده روی کرده بودم <تصفيق> بعدش میخنده فکر کنم شما هم همینطور بودین نه خوشگل خانم جوون ترسونی که فکر می کردم. شاید بیست هفت هشت نه سال است چراش بد نیست؟ نگه خوب به نظر بیاد فقط بد نیست خوشرو با یه لبخند پتوپرد. لهجش کاکنی یا استوری یا یه همچین چیزیه. جوری به هم نگاه میکنی که انگار چیزی راجع به من میدونه. انگار, انگار داره دستم میندازه انگار با هم همدیگه شوخی داریم. ما که با هم شوخی نداریم. نگاه ما ازش بر باید چیزی بگم. مثلا ازش بپرسم. چیزی دیدی؟ دی؟ میپرسه. حالت خوبه؟ بله خوبه. دارم از پنجره بیرون رو نگاه میکنم اما باز نگاهش رو روی خودم حس میکنم میل عجیبی دارم که برگردم سمتش سمت بوی سیگاره رو لباس صاف و نفسش دوست دارم بوی سیگارش رو استشمام کنم وقتی منو و اولین بار هم دیگر رو دیدیم اون سیگار میکشید حس عجیبی داشتم باش وقتی با هم بیرون میرفتیم برای مشروبی چیزی این بو برام اروتیکه یادم میندازه که زمانی خوشحال بودم دبم گاز میگرم برای یه لحظه از تصور اینکه اگه همین الان برگردم و ببوسمشون چیکار میکنه؟ گیچ <تصفيق> میشم. احساس میکنم داره تکون میخوره. خمیشه جلو خمیش و روزنامه رو از روی پام برمیداره. وحشتناکه نه دختر بیچاره. خیلی قیراتی و مرموزه. ما اون شب اونجا بودیم. همون شب نه؟ این همونیه که گم شده دیگه. انگار داره ذهنمون میخونه و این منو میترسونه. سری بهش نگاه میکنم. میخوام از روی نگاهش دستشو رو بخونم. ببخشید. اون شبیه که شما رو توی قطار دیدم، همون شبی بود که اون دختر گم شده بود، همونی که جسدش رو پیدا کردن. اونا میگن آخرین بار که اونو ندیده که توی اسکا باشه. فکر کنم شما میدونید که من احتمالاً اونو دیدم، هرچند یادم نمیاد من زیاده روی کرده بودم. و شونه بالا میندازه شمام چیزی یادتون نمیاد ها؟ عجیبه وقتی این حرف رو میزنه من چیزی رو احساس میکنم قبلا انگار هیچ وقت این حسو نداشتم من نمیتونم جواب بدم چون ذهنم کاملا یه جای دیگه است نه جایی که حرفش من و اونجا کشونده باشه فکرم دنبال این بوی عطر بعد از اصلاح قاطی بوی سیگار این عطر سرزنده با تعمل لیمو شهوانی یه خاطره رو از نشستن کنار اون توی قطار احسار میکنه درست مثل حالا که اینجا نشستم فقط تو مسیر دیگه یا با کسی دیگه ای. کسی که با صدای بلند داره میخنده و دستشو گذاشته روی بازوم اون میپرسه که میخوایم بریم یه نوشیدنی بخوریم اما یه, انگار یه،, یه،, یه چیزی انگار یه چیزی انگار اشتباهه من احساس وحشت میکنم گیج شدم یکی داره سعی میکنه عذیتم کنه میتونم مشتشو ببینم که بالا اومده و من مچاله شدم تو خودم دستامو گرفته بودم بالا تو از سرم محافظت کنم من دیگه تو قطار نیستم تو خیابونم میتونم صدای خنده رو دوباره بشنوم صدای داد و فریادو من من رو پلههام تو پیاده هم خیلی گیت شدم قلبم توم میزنه من نمیخوام هیچ را نزدیک اون مرد باشم میخوام ازش دور بشم تاند بلند میشم و میرم جلو میگم ببخشین. اونقدر بلند که آدمای دیگه توی واگنم بشنون اما کمتر کسی اینجاست هیچکس هم دور رو نگاه نمیکنه سرش سرشو بلند میکنه و نگاه میکنه بعد با تعجب پاشو میکشه کنار تا بذاره من رد بشم اون میگه متاسفم خوشگل خانم نمیخواستم ناراحتت کنم من با سرعتی که میتونم ازش دور میشم اما قطار تکون میخوره و کج و راست میشه. نزدیک تعادلمو از دست بدم. پشت یه صندلی رو میگیرم و مانع افتادن خودم میشم. مردم بهم خیره شدن. با عجله به واگن بعدی میرم و از بعدی به بعدی همطور ادامه میدم تا میرسم به انتهای قطار. احساس تنگی نفس میکنم و خیلی ترسیدم. نمیتونم توضیحش بدم. نمیتونم به بیارم چه اتفاقی افتاده اما میتونم حسش کنم ترس و دل میشینم و صورتمو به سمتی میچرخونم که از اونجا اومدم تا بتونم اگه پشت سرم اومد ببینمش کفه دستامو فشار بودم رو کاسه چشم تمرکاز میکنم سعی میکنم برای دیدن چیزی که دیده بودم برگردم عقب به خاطر مسی به خودم لعنت میفرستم اگه فقط ذهنم و سالم نگه دارم همویی و این تصویر میاد توی ذهنم هوا تاریخ و مردی داره ازم دور میشه یه زنی که داره از من دور میشه. آره یه زن که لباس آبی پوشیده، اون آن خون هجوم میاره به سرم قلبم محکم میکوبه نمیدونم چیزی که دارم میبینم و می میکنم واقعیه یا نه تصوره یا خاطره چه به سختی فشار میدم و سعی میکنم دوباره حسش کنم دوباره ببینمش اما محو شده رفته